Up, O, up O! واني فارسي بسم الله الرحمن الرحيم سلام ګرانی هژای برنامه ی وانی فارسی لم زنجیره برنامه تایستا چند رسته گرینگو بکالکی فارسی فیربونو بهندک وتنوا دچونن بکاریان بینن استاش فرمون دغال باسی امر محمد رامین امروش حوره مانن لیبرتنه محمد لهدی کی نیه دګرا او لنبارا وا لغال رامين قصيدة كرت رامين هوداكي خوي پي پيش نيار كرت لبارا ويكا لهوداكي رامين قراويلايك بطالبو امرو اوانده چن بولاي آغاي داوري برپرسي بشي نيوخوي جماردو و لغالاودا لباري گوريني هوداكي محمد قصده كان اگر او رازي بيت محمد داتواني لهودهي رامين بميني لبرنامه امرو دا لقل مان بن تاب بزانين ايا محمد رامين دبن با هاو منزل یاننا سرطا سرنجكي وشکاني واني امرو بدن روز بخیر، روز بخیر، روش باش، آقای داوری، آقای داوری، هجدا داوری، اتاق، اتاق، هدف، اتاق من، اتاق من، هوده کمن. تخت، تخت، قراویلا خالی خالی بتال تخت خالی تخت خالی قراویلی بتال میدونم میدونم ده زانم ساختمان ساختمان بنا دو دو دو ساختمان 2 ساختمان 2 بنای دو یک یک یک ساختمان یک ساختمان یک بنای یک دوست دارید دوست دارید پتن خوشه است است هيا اگر اگر اگر ممکن است ممکن است لوانه اتاق من اتاق من هدیه من بفرمایید بفرمایید فرمون in in aua forma forma forma forma danishju danishju xwentkar danishjuha danishjuha xwentkaran خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. زور سپاس. خیلی ممنون. خیلی ممنون. زور ممنون. یودارم اوشا کان تاني ادش کردبی ولای خوت نوادو پاتن کردبی تو استا با وردی گوبگرن لا و توشی محمد رامین لا گل باریس دا وری برفرسی خوی جما ردو سلام اقا سلام اقا سلام روز بخیر سلام روز بخیر آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم. آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم. بله میدونم. بله میدونم. این آقا محمد است. او دانشجوی ادبیات فارسی است. این آقا محمد است. او دانشجوی ادبیات فارسی است. سلام آقای داوری. سلام آقای داوری. سلام شما در ساختمان دو هستید؟ سلام شما در ساختمان دو هستید؟ نه، اتاقی من در ساختمان یک است؟ نه، اتاق من در ساختمان یک است نه اتاق من در ساختمان یک است باشه شما ساختمان 2 را دوست و شما ساختمان 2 را بله اگر ممکنه بله اگر ممکنه سلام آقا. سلام برز سلام روز بخیر. سلام روز باش. آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم. برز داوری املاه دکمن خرو维尔ی کی بطال مانه یا؟ بله میدانم. بله دزانم. این آقا محمد است. او دانشجوی ادبیات فارسی است. او برز محمده او ادبی فارسی است سلام آقای داوری. سلام برز داوری. سلام شما در ساختمان دو هستید؟ سلام تو لبینه دو دای؟ نه اتاقی من در ساختمان یک است. نه هودکی من لبینه جمارد یکه. و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ پت خوشب چی بابینه جمعه دو؟ بله اگر ممکن است بله اگر دکره اجا داوری ولام نادات اوه او لپشت میزکی حال دستیو برو دولابی سوچی هودکده چه او لینو قاقزان دا دگاره محمد و رامین سیرکی یک تردکن برز داوری با لپرا قاقزکوه لپش میزکی خوی دادنی شه او قاقزه فورمی تایبتی خوندکرانی بینای جمار دویا به نو نشانی خویان لسر ام فرما بنوستن او قغض که ادب محمدو داله بفرمایید فرم دانشوهای ساختمان دو بفرمایید فرم دانشوهای ساختمان دو خیلی متشکرم آقا خیلی متشکرم آقا خیلی ممنون. خیلی ممنون. بفرمایید. فرم دانشجوی‌های ساختمان فرمون، فرمی خلقانی بنای شماره دو. خیلی متشکرم آقا. زور، سپاس. خیلی ممنون. زور ممنون. <تبخل> ازکن ج ک که یگرن با اووشکن و فرسی. روز به خیر، روز به خیر، آقای داوری، آقای داوری، اتاق اتاق اتاقمان، اتاقمان، تخت، تخت، خالی، خالی. تخت خالی تخته خالی میدانم میدانم ساختمان ساختمان دو دو ساختمان دو. ساختمان دو, ساختمان دو. یک یک. ساختمان یک ساختمان یک دوست دارید دوست دارید است است اگر اگر ممکن است ممکن است اتاق من اتاق من. اتاق من است اتاق من است بفرمایید بفرمایید این این فرم فرم دانشجو دانشجو دانشجوها دانشجوها خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، خیلی ممنون، خیلی ممنون، هر بار زکن بم چشنه گیشتینه کوتایی برنامه امروشمن حتی برنامه‌ای کید که پیگیش نوید دوباره همولیکتن به خودی گوره دست برم هر بیشین خوشی و شادی آو